هفته. در فوریه سال 1931 بعد از افتتاح فیلم روشنایی های شهر در نیویورک پدرم آزب مسافرتی طولانی به دور دنیا شد اما او تنها مسافر خانواده چاپلین نبود تصمیم گرفته شد من و سیدنی که به ترتیب 6 ساله و 5 ساله بودیم برای خودمان مسافرتی بکنیم مدرم که سال پیش برای گردش به اروپا رفته بود، فکر می کرد برای ما خوب است مدتی در فرانسه بمانیم و تا موقعی که هنوز کوچکیم زبان خارجی دیگری هم یاد بگیریم. قرار شد نانا ما را به اروپا ببرد. این بار من و سیدنی کشف کردیم که پدرم طریقی مطمئنی برای جلب توجه دارد. فقط لازم بود ما حرکات او را به عنوان ولگرد کوچک تخریب کنیم و همه جا با خنده و کف زدن مورد استقبال قرار بگیریم اما هنوز ما از موقعیت او در جهان خارج از آمریکا خبر نداشتیم این را وقتی فهمیدیم که در بندرگاه نیویورک سوار کشتی ایلدو فرانس شدیم درست پیش از حرکت کشتی انبوهی از نگاران دور ما جمع شدند تا با ما حرف بزنند شاید در حدود 20 نفر عکاس بودند. دوربین ها به کار افتاد و فلاش های عکاسی برخ زد تا خبرنگاران آخرین خبر را درباره عزیمت فرزندان چاپلین به اروپا به روزنامه ها بدهند. وقتی در فرانسه پیاده شدیم باز مورد استقبال پرشوری قرار گرفتیم. شاید این سامیمانتر و پرشورتر هم بود زیرا پدر ما که فرانسوی ها او را به نام شارلوت میشناختند، همیشه در فرانسه محبوبیت داشته است. مردم با لحن خاصی به ما می پس شما پسران چاپلین هستید. میدانید پدرتان هنر بزرگی است؟ شما باید به داشتن پدری مثل شارلوت بزرگ افتخار کنید. مثل این بود که همه کس او را می شنستد. همه او را چون بوتی می پرستیدند. همه کس به ما داشت چون پسران او بودیم قبل از پایان ماجرا حتی ما در یک برنامه رادیویی هم شرکت کردیم ما به زبان فرانسه و انگلیسی آواز خواندیم و مثل اشخاص مهم به پرسش ها جواب دادیم بابا همیشه به نظر ما آدم خوشمزه ای بود اما حالا با این اوضاع و احوال در نظر ما بزرگتر شده و مانند چهره ای افسانه‌ای تشلی بیشتر آن سال را که در خارج بودیم در نیس گذرندیم. دوست دوران جوانی نانا هم در آنجا بود. او میلیونری به نام ویکتور برسلر بود. آشغ نانا بود و میخواست با او ازدواج کند. اما نانا او را رد کرد و خود را وقف مانم بود. من همیشه از این فداکاری او ممنون بودم. بدون او من وستیدنی چه میتوانستیم بکنیم؟ فرانسه برای من مثل سرزمین پریان بود. هنوز مانند صحنه های رنگ آمزی شده به یاد من می آید. مناظر عجیبی که آقای برسلر به ما نشان داد، پارک های قشنگی که در آنها حلقه می و شادمانه از دست خبرنگاران و که گفتی همیشه در تغییب ما هستند فرار می کردیم و بچه های فرانسوی که هم بازی ما بودند همه در خاطر من باقی مانده است اوائل کم بودی داشتیم چون نمیتوانستیم به زبان آنها صحبت کنیم. اما بعد کم کم زبان اسپانیایی را از یاد بردیم و به جای آن شکست بسته فرانسه ی ای صحبت می کردیم. در سرزمین آفتابی جنوب فرانسه حراس شبانه من از بین رفت. دیگر شب از خواب نمی پریدم و جیخ نمی کشیدم. نانا گفت من بزرگ شدم و بهبود یافتم. در همین زمان پدرم در مسافرت دور دنیا یک بار دیگر محبوبیت خود را ثابت کرد. او در انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه و بعداً در ژاپن مورد استقبال قرار گرفت. با رجال سیاسی مانند رمزی مک‌دونالد و لوید جورج ملاقات کرد. با چرچیل و آلبرت اشتاین و در عرصه‌های ادبیات با برنارد شاو، ولز، فرانک هریس و امیل لودویک تشدید آشنایی بود او با شاهان شاهزادگان دوکا و مهاتما گاندی مراقات کرد با دوگلاس فربنگس در سنباریکس باریکس اسکی را یاد گرفت و همراه امود به مشرق رفت و از سیلان، سنگاپور جزایر مالی و بالاخره از ژاپن بازدید کرد در ژاپن مانند پادشاهان از او پذیرایی شد مزدیک بود در ژاپن ماجرای جدی برای او رخ دهد اعضای انجمن اشده های سیاه که یک باند کهان بود و میخواست ژاپن را در حالت اخب مانده نگه دارد، نخست وزیر اینوکایی را به قدر رساندند. پدرم در آن موقع آنجا بود. سالها بعد به من گفت که افراد این دسته از او بدشان میامد. زیرا تصور میکردند محبوبیت او نزد مردم ژاپن آنها را به قرب نزدیک تر میکند. زندگی پدرم واقعا در خطر بود، به پلیس دستور داده شد مواظب او باشند و پدرم برای گمراه کردن آدم کشان ناچار بود هتل خود را عوض کند کمی بعد از عزیمتش از اولین هتل دو از اعضای انجامن در آن هتل دستگیر شدند آنها در جستجوی او بودند و می‌خواستند او را بکشند بالاخره پس از یک قیمت پانزده ماهه پدرمان به آمریکا برگشت تقریبا همه یه که در جریان سفر طولانی او برایش رخ داده بود در روزنامه چاپ شده بود و چون ما فرزندان او بودیم برای ما هم هر واقعی کوچکی رخ میداد به صورت خبر در میآمد. اما این همیشه انعکاسی از افتخار و جلال او بود حالا یک سال بعد از آمدن ما به فرانسه ناگهان واقعی رخ داد که سبب شد ما احساس کنیم به زودی به حق آدم های مهم می خواهیم شد. مادرم به نانا تلگرافی زده بود. دیوید باتلر کارگردان علاقه بود فیلمی با شرکت ما تهیه کند و ما با بایستی فوراً به آمریکا برمیگشتیم. ما با های جان اسوابهای را جمع کردیم و یادم یاید که چطور با سیدنی در خواهی نشسته بودیم. و با شور فراوان در شغل و مقام آینده خود صحبت می‌کردیم. وقتی به نیویورک رسیدیم دیدیم هیاهو و سر و صدا در اینجا زیادتر است خبرنگاران با ما مصاحبه کردند و درباره پدرمان از ما میپرسیدند. میخواستند همه چیز را بدانند من موقرانه گفتم من میخواهم هنرپیشه بزرگی بشوم شاید این لاف و گزاف بود اما فقط لاف و گزاف نبود من در بارگ مردی می که بزرگترین هنرپیشه کمدی جهان بود. من فرزند و همنام او بودم بنابراین باگستی شاگسته می بودم. دلم میخواست که ماگیگ افتخار او باشم. مادرم ما را از نیویورک به هالیوود همراهی کرد. کمی بعد یک آقای باتور برای شام به منزل محمد و قرارداد به امضا رسید. نانا به پدرم که تازه از راه رسیده بود تلفن کرد و پرسید که آیا نمیخواهد ما را ببیند. او جواب داد کلمت البته مایل است ما را ببیند. نانا فوراً ما را نزد او برد. دوباره در خانه بزرگ فراز تپه نزد پدرمان بودیم. تقریباً یک سال و نیم بود که او را ندیده بودیم. ما با عدم اعتماد به نفس بالا رفتیم و او را بوسیدیم. او لبخندی زد و ما را در آغوش گرفت. او کمتر ابتدای ابراز مهر میکرد و اگر هم میکرد به عنوان یک حرکت رسمی کار را میکرد. گویی میترسید که ابراز مهر او پذیرفته نشود. فوری پرسید؟ بچه ها میتوانید فرانسه صحبت کنید؟ او همیشه به چیزهایی که من بستیدنی یاد میگرفتیم علاقه من بود. وقتی ما در زمینه تعلیم و تربیت بر چیزی مسلط سلط می شدیم، او احساس افتخار می کرد. ما برایش زبان فرانسه حرف زدیم و او مثل این که این یک چیز جالب و مخصوصی است می خندید. این کار برای من و سیدنی چیزی نبود. میلیون ها کودک دیگر هر روز فرانسه حرف می زدند، اما مثل این بود که ما به راستی کار بزرگی انجام می دهیم. ما لافزنان گفتیم ما می مثل شما هنرپیشه بزرگی بشویم. امیدوار بودیم از این گفته خوشش بیاید. اما او گرفته به نظر آمد و حتی درباره باره ما اظهار نظری هم نکرد. پدر ما بیان که ما بدانیم با بازی کردن ما در فیلم مخالفت کرده بود. بالاخره او از خانوادهی هنرپیشه بود و از سنین کودکی روی سهمی تماشا ها بازی کرده بود. برای فرزندانش طبیعی بود که جای پای پدر قدم بگذارند، زیرا این با خونشان آمیخته بود. شاید هم مخالفت او فقط به این علت بود که خودش در کودکی هنرپیشه بود و خاطرات دردناک کودکیش با این کار مشکل سبب میشد که جدن بکوشد من و سیدنی را از شرکت در فیلم من کند. وقتی فهمید قرارداد امضا شده و معامله به پایان رسیده از وکیلش خواست موضوع را به دادگاه اهاله کند معلوم شد که دعوای دیگری بین او و مادر یا لاقل بین وکلایشان در گرفته است روزنامه‌ها موضوع را قاپیدند و درباره آن شرح و تفسیل نوشتند هرکس کس که خواندن می‌دانست از این قضیه مطلع شده بود همه می‌دانستند من و اسیدنی استدلال پدر ما بر ضد شرکت مادر فین در دادگاه بسیار موثر بود او به وسیله وکیلش گفت که او فقط به سعادت و سلامت ما علاقه دارد و میترسد که وارد شدن ما در این سن در کار نماگش به تعلیم و تربیت ما لطمه بزند قاضی موافق بود و به نفع پدرمان رأی داد قرارداد باطل شد وقتی به من ووسید میگفتند که دیگر در فیلم شرکت نخواهیم کرد چنان ناراحت شدیم که گریهمان گرفت. بعدا در خانه فراز تپه پدرمان علت الغی قرارداد را برایمان توضیح داد. بچه، ها، اگر شما جدا میخواهید هنرپیشه شوید بدانید که هنرپیشه شدن در این سن برای شما بدترین چیز است. شما به عنوان کودک هنرپیشه شناخته خواهید شد. بعد سقوط خواهید کرد و آن وقت باید برگه شناخته شدن به عنوان هنرپیشه بزرگسال همه چیز را از نو شروع کنید. زیرا همه شما را به عنوان کودک هنرپیشه به یاد میآورند. اما بعد از آنکه بزرگ شدید اگر باز هم دلتان خواست هنرپیشه شوید من دیگر مداخله نخواهم کرد. امروز، وقتی من مرارتهایی که هنرپیگان خرد سال مانند جاکی کوگان، برای بازی کردن به عنوان هنرپیشی بزرگ سال کشیدن میبینم به عقل پدرم پی میبرم وقتی به ما گفت ما باید منتظر بمانیم تا بزرگ شویم، مقصودش چه بود؟ شرلی تمپل که به زودی در اداد هموازی های ما درآمد، حتی از ما هم کوچکتر بود فقط سه سال داشت و با این وجود کار هنرپیشگی را شروع کرده بود از این رو من و سیدنی با نارضایی به هم میگفتیم اگر پدرمان کار را به هم نزده بود ما هم می توانستیم هنر پیش شبید.